الحمدلله الواحد الأحد الفرد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلکو شریکون فی الملک ولم یکلکو ولیون من از ظل و کبره و تکبیره و و سلام خیر خلقین و شرف بریت سیدنا و مولانا حبیب لای اله عالمین ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله محمد صلی الله علی و علی و سلم سیام ناموس الدهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدي اروازم به تراب مخدمه خدا فلا نتولا الا اعدای مجمعین من الان الا قیام یوم الدین خوب شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خدا رو به آوروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد داید. اموات و گذشتگان همه ما رو قریغ رحمت فرماید عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید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 خوب ارایز ما در این شب نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر موعظ و فرمایشات درربار امیرالمؤمنین علیه السلام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 تو این چند شبی که باقی مونده ملا یه چند جمله هم عرض میکنیم دیگه به همین اکتفا میکنیم امشب به این جمله میلسیم فرازهای پایانی نامه میفرماید که وعلم یا بنیه ان رزقه رزقان میگه که بدان فرزند دلبند من که ما دو تا روزی داریم روزی دوگونه است این فرمایشو حضرت امیر شاید مکرر فرمودند تو همین نهج البلاغه که سید رضی جمع‌آوری کرده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 همتراز قرآن به حسابش میارند واقعا عجیبه ممکنه خیلی جب اونا خیال کنند که نهج البلاغه رو امیر المومنین نوشته الغاب عجیبی هم به نهج البلاغه دادن اخو القرآن و اینا بهش لقب دادن دیگه برادر قرآن و. این کتاب رو سید رضی در سه بخش تنظیم فرموده یه قسمت خطبه های امیر که همین سخنرانی های حضرته که مثلا اونایی که پایی منبر بودند اینا رو نقل کردند. یه قسمت نامه های حضرته امیره که خب مکتوب بوده و فکر میکنم حدود هفتاد و نه تا نامه است سید رضی تو این کتاب آورده این نامه سیوی کوه. یه بخش پایانی هم داره که کلمات قصاره، جملات کوتاه که نه نامست نه خط است. که اون نام حدود مثلا کمتر از 500 تاست، ۴ صد ۸ مثلا اننگلی که نباه که هم داره بازم من امروز تو کلمات قصار شماره 379 تقریبا همین مضمون و گفت. المومنین گفته باز تو کلمات قصار 269 تقریبا همین مضمون رو گفته یعنی این جمله فقط تو نهجل بلاقه سه بار اومده حالا ممکن از تحمیل جای دیگه هم بله کلام اینطور نیست که تکراری نباید باشه خود قرآن هم اینطوریه خیلی آیاتش تکرار شده بعضی مضمونهای قرآن شاید پنج شیش بار تو قرآن اومده حرف خوب آدم باید بزنه واقعا بشر نیاز داره که بهش یاداوری کنند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 یادآوری کن اتفاقا تکراری بگو ذکر نگه تکراری بگی این مکرر بگی الان این نمازی که شما میخونین تکرار دیگه مگه جور و جور که نیست که شما الان هفتاد سال پنجا سال یه جور نماز میخونین اما اثر دارد این دارینه که اینا اثر نداره که یه زیارت آشورایی که میخونین تکراریه بعضی مثلا تو یه روز سه بار زیارت آشورا مخوند اثر داره فزکر این از زکرا تنفع المؤمنین همین یاداوری ها تاثیر دارد من یه شب اینجا براتون گفتم آدمی زاد هرچی پاکتر باشه معذر رو بیشتر دوست داره همین چیزای تکراریه موعظه چیزای ت... علم که نیست مثلا ما اینجوری که اینجا انتگرال یاد میدیم شما میگی آقا من اصلا انتگرال بلد نبودم ما هم از اون افتن یاد گرفتم نه ما انتگرال یاد نمیدیم که این توجه بمه یا یکی بگه مثلا من برنامه نویسی کامپیوتر بلد نبودم بیت‌الحسن یاد گرفتم نه موعظه است اما آدمای پاک دوست دارن یا از ورامین میاد پای مویزه میشین داریم آمام اصلا آدم از از ورامین من یه ببینیم اصلا از قذوین میاد پای مویزه میشین از کرج میاد پای مویزه میشین ولی که دو تا اون اونورتره می... میگه من این رو همه رو فولم هر هرچی انسان پاکتر باشه مویزه رو بیشتر دوست داره از امیرالمؤمنین به ساعت سع سعد ابن سوهان میگفت: "اذمی." خیلی عجیبه به شاگرد خودش. یه روزی بهش فرمودن که چون خوش بیان بود. سعه سع خیلی خوش بیان بود. سعه سعد ابن سوهان فوق العاده. هم قدرت بیانم یه چیز خداداد اکتسابی هم نیست. این خوش بیان بود دیگه. خوب میگفت. حضرت فرمودن که اذنی منو موعظه کن. اونم گریه کرد. اصلا "یا آقا بگو." گفت یا امیرال من چی بگم آخه جلو شما اصلا گفت من چی دارم جلوه گفت نه ناراحت نشو. تو شنیدن یه اثری هست که تو دونستن نیست <تصفيق> جاده می شده می دونه همه یکی از یکی می زیر رو میشه به هم می ریزه همونی که میدونه دونه گفت،, گفت خیال نکن بعد یه چیزی بگی که من تالا نشنیده باشم نه همونو تو یه جوری میگیم اثر داره یه شب براتون گفتم پیامبر به جبرئیل میگم منو موعظه کن از خودش پایین تر کسی که سجدش کرده اصلا ایب ندارد یکی ای ای ای اصلا پایین تر هست یه چیزی میگه موعظه میکنه. حالا این جمله سه بار تو نحجه بلواقع تکرار شده اب ندارد حرف, حرف خوب تکرار بشه که ایراد ندارد همین افتاری که میکنین تکراریه دیگه عدتون نمیاد که چوبه هیچ میگه آقا من الان 30 دارم افطار میکنم دیگه م... لحظه شماری میکنین که افطار شه همون مثلا ن... همون نون و پنیر و سبزی و هم. چون تغذیه است دیگه جسم نیاز داره که تغذیه بشه روح هم نیاز داره تغذیه بشه همین خوابی که میرین تکراریه ولی همه دیگه وقتی یه خورده دیر بشه دیگه خمیازه میکشند نیاز دیگه این... نه من دیگه آقا من هر شب میخوام دیگه کلافه شدم نه لحظه شماری میکنه که متقا بیارم بخواب وقتی خسته میشه تکراریه هر تکراری بد نیست این همه اینطوریه وعلم یا بنایه ان الرزق رزقان از رت پسرم اینا بدون که روزی دوتاست. هست رزقون تطلبو. یه روزی میاد اون دنبال تو میاد پیدا میکنه و رزقون یطلبو که یه روزی رم تو باید دنبالش بری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 انسان تا تلاش نکنه تا کوشش نکنه به دستش نمیاره. باید بری دنبالش. روزی اما باید تلاش براش کرد عرق براش ریفت. اما بعضی روزی نه مثلا ارث دیگه حالا یه بگم یه دفعه آدم یه بابای پول دار داره یه ارسی بهش میرسه مثلا تو خونه خوااببی را میادی که دف چقدر ارزش میشه مثلا میگه یک یه آقایی رو میگفتن دویست میلیارد ارز بود دویست میلیارد ارز بود دیگه یعنی دنبالش نرفته که یا یه وقت مثلا یکی یه زمینی میخره یه دفعه بغلش اتوبان میفته لیره میشه مثلا خودشم خبر نداره میام بهش میگم خبر دریستم میگه نه میگن برو الان لیره شده برو, برو. اوتوبان کنارش افتاده میگه اه من از اونجا که بیا شد دیگه آقا خابیده بود تو خونه یه دفعه شد دیگه الان خورد کرده دیویس میت دیویس میت میفروشه یه روزی رو میگه بعد تو دنبالش بری یه روزی خودش میاد دنبالت تو قرآنم هم اینطوره بعضی وقتا خدا میگه تا تلاش نکنین نمیشه همین که یه دنشو خوندم بعضی جا میگه من یتق الله یج اللهو مخرجا و یرزقه من حیث لا یه تس این روزی که هر دو رو گفته همون رو گفت همین تو قرآن هست یعنی اگه من بخوام میتونم یه مشت آیه بخونم که اون بر میگه میگه تا تلاش نکنی نمیشه یه مشت آییم بخونم که این بر میگه میگه اگه تقوا داشته باشی از اون جایی که حساب نمی کنی من روزیت میدم مثلا تو خونه خوابیدی میدم من توجه بدم خدام بالش بسته نیست که یا آقای اومد به حالت انکار به این نگاه میکرد من گفتم آقا شما شغل چیه گفت فلان گفتم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 اونو که اصلا شما روش حساب نمی‌کردی به خاطر این خدا میفرماید اگه تقوا داشته باشین من الا هم یوام این رو انگشترشون می‌نویسم نه میگن هر کی اینو رو انگشترش بنویسه روزیش زیاد میشه اگه ناراحت نمیشیم من میگم نه روزیش زیاد نمیشه بچه‌ها هر کی تقوا داشته باشه ما خود اون رو می‌ذاریم کنار خود آیه رو رو انگشترمون می‌نویسیم رو انگشترش می‌نویسه که من یتقلا یجل نماز صبحش قضا میشه میگم خب این تقواست که تو نماز صبح قضا میشه میگه آقا انگشتره که خب میگم انگشتل خوبه بچم می‌کنی اما تو روزه می‌خوری چی نه ببینید هر کی تقوی داشته باشه اصلا انگشترا نداشته باشه بچم انگشترا هم, هم نخاید حالا الان که میگن که مثلا فرض که این انگشتر و حاجوسه این شهید نوشته اون که دیگه لیره میشه میگن حالا اون نوشته به تو چه میگن. یا میگن دست آیت الله بحجت بوده این انگشت دست آیت الله و باشه روزی شما رو زیاد میکنه ما اینا رو بیشتر قبول میکنیم تا من بگم آقا نمازتو اول وقت بخون روزی زیاد میشه اون آیه داره اون میگه اون آیه میگه هر کی به پدر مادرش احسان کنه روزیش زیاد میشه این میگه این انگشتار روش این آیه نوشته شده خوبه این انگشتار روش این آیه نوشته شده ذکر بهلاخره اما اون آیه میگه هر کی نمازشو اول وقت بخونه من روزیشو زیاد میکنم پس روزی دو تاست یه روزی که اون میاد سراغت ما گفتیم ارسه مثلا گفتم یه چیز همه قبول کنم یه دفعه ارس رسید به توجه م... ما گفتیم یه دفعه یه زمینی مثلا کنارش اتوبان افتاد مثلا یه خونهی شما داشته یه دفعه اومد توی ترهت اتوبان قرار گرفت لیره شد میگن دیگه تجاری شد نرفتی دنبالش او سراغ شما آمد به خاطر این به پسرش میگد که نه برای طلب روزی هرس بزن اعتدال نه تمبلی کن چون دونو روزی هست بعضی جاها تمبلی کنی یه روزی از دستت میره اونا رو باید تلاش میکردی بعضی جاها رو هرس هم بزنی یه روزی به کفت میاد نه اونجور هرس بزن نه متدل با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 شب و روز دنبالش میدوند حالا همین مضمونو از رت توی کلمات قصارشون هم گفتن یبن آدم اینجا اینطوریه چون دیگه خطاب امام حسن نیست گفته آدم ایزار پسر آدم ار رزق و اما این همون رو گفته رزقون تطلبو و رزقون یطلبو که یه روزی که تو بر دنبالش بدی یه روزی که میاد و به تو میرسد این یه معنا اگه اجازه بدید این کلام رو دو جور معنی میکنم این یه معنا یه معنام اینجور عرض میکنم که عواملی که چون این خیلی هم از من میان میپرسن شاید تو همین مارم از اون چقدر اومدن از من پرسیدن دیگه اینو کامل تنظیم کردم عرض میکنم تواملی که روزی انسان رو زیاد میکنه به دو دسته تقسیم میشن. یکی تلاش کوشش یکی از چیزهایی که روزی آدم رو زیاد میکنه یعنی آدم تلاش کنه کوشش بکنه بعض بعضی بعضی فقرا از خود آدمه من ندام چه تعبیری از این بکنم خیلی ها فقیرند ماره آدم های هستن تنبلن فقیر هم. مثلا درامدش <تصفيق> کمه من میگم خب کی تعطیل میشی؟ میگه چهار بعد از ظهر تحتیل. میگم خب چهار بعد از ظهر یه موتوری بگی برو توی این پیک تا هشت شب یه دوری بزن. حقوقت میشه دو. میگه آجاها من لیسانس دارم آجاها. میگه اصلا شما چی میگیم؟ میگیم خب چهار تعطیل میشی بیا حسابداری دیگه بیا توی این مغازه میگه دیگه خسته میش دیگه دیگه می میبرن چهار که میافتم می افتن دیگه بسه تمبلن بعدی بزن سرکار نمیرن یه انا خیریهی که ما تو محلمون داریم به یه خانواده ما کمک می کنیم شوهر این سرکار نمیره با بزن و بچهاش کمک می کنیم هی میگن قط کنیم میگم آقا چرا قط کنیم خب اینا چی بخورن <تصفح> نمیره سرکار دیگه سه بار چهار بار ما براش کار پیدا کردیم برای همین آقا همین دو روز که میره میگه من کمرم درد میگیره دیسک دارم میگیم آقا باید کار کنی دیگه یه چیزی رو ایراد میگیره یا میگه صاحبکارش خشنه عصبانیه بد بادم عرض میزنه بعضی از تمبلی فقیره فقری که دست خدا آدمه اینطوری نکرده هر کی فقیره خدا روزشو کم کرده نه تمبله نمیره سر کار. امیر المومنین آقا لیسانس که نداشت دکترا که نداشت امیر المومنین کوه علم بود اصلا دیگه حجت خدا رو زمین شغلش چی بود این با شتور میره تو زمین یهودی نصرانی کار میکرد آب میکشید هر دلوی که آب میکشید میرید یه دونه خورما بهش میده. الان شما میرید من میرم بگن آقا شغل شما اینه میگم آقا من فغلیسان دارم برم آب بکشن بریزن تو زمین بابا میگم امیرون مومنین حجت انم مدین تل ارن و علیون بابا اون آب آخر شب میشد سه کیلو خورم الان من بگم جمعون ها ناراحت میشن الان ما آمارم نداریم چقدر افغانی تو کشور ماست یه دونه افغانی بیکار نیست نه بیکار نیست اصلا وقت نداره بهت قول بده شما اگه تونستی یه افغانی رو آقا فردا ببری سر زمینت برات کار کنه من رو ول میکنم بیا الان بری میگه بعد مارم از اون بیا میگه من یه چیه من میخواستم بکنم یه خورده یه کار دیگه به افغانی بود میگم آقا بکن لولمونو رو میخوایم مثلا عوض کنیم نم میده گفت من مثلا هفته بودم آقا آب داره میره تو میگم من... گفت پس شب میام گفتم آقا شب بیای که این خ... همسایه‌امم مزاحمته آقا تو میخوای با پلنگ بکوبی شب گفت آقا وقت سجاغول میده همه کارم بلده ما همین خونه بغلیمون که می ساخت به برقش که میرسید میومد میگو آقا برقشو بده به من هر کی قیمت داد من پایین‌تر برات انجام به لوله به لوله‌کشیش میرسید میگو آقا بده به من هر کی قیمت داد من پایین‌تره به نمای ساختمون که رسید گفت بده به من هر کی قیمت داد من تر میزنم یعنی هر کاری پیش اومد گفت بده به من من از همه پایین‌تر میزنم بعد من یه روز تو همه رو من تو ایران یاد گردم و وقتی اومدیم هیچی بدت نبود تو همین یاد گرفت الان اصلا معماره. خب اما جوانای ما همه خب، خیلیش ما تنبلیه خیلیش هم میگم در شهن مانی آقا شان چیه به میگم امیرالمومنین المومنین شغلشی اصلا کشور اینجوری ها اگه این افغانی ها از این کشور برن دیگهاصل به چه به چه روزی میفتین بم کارگر بشه روزی 5۶ دومن. تازه بیانم سه ساعت کار میکنن یا کمرشون میگیره یا دستسشون در میره. نمی... ا نمیتونم کار کنم که خب این کشور پیشرفت نمیکنه که به تلاش کوشش ممکنه جوون ها بهشون بر بخوره. حالا این مدکه چیه؟؟ بعد حالا مثلا این مدرک رو داره خب هیچ کاری که بلد نیست میگه مگه چه کاری بلدی میگه هیچی فقط لیسانس لیسانس داره الان من رفیق دارم آقا 30 سال کارمند بوده بعد 30 سال اومده بیرون میگه واسه بازنشستگی میجو. میگم چی بلدی میگه به خدایی چی یعنی هم لیسانس داره هم 30 سال کار کرده میگه هیچ کاری من بلد نیست. نمیتونم بگم من چه کاری بلدم که یه میگم خب مردم به چی تو پول بدن باز بر یکی پارتی پیدا شه بگه آقا بیا بیشه ما مشاور باییست مشاورم که میدونی یعنی چی مثلا مشاور یعنی چی به خدا آخرش بعد این بشه دیگه بعد بگن که آقا بیا اینجا مشاور باییست همینجا رو به قبله باییست کاری بهش ارجاش شد میگم آقا تو الان خب پنج سال اینجایی ای کاری به تو ارجاش شده گفت نه حقوقمون که میاد کاری ارجانه وانه بخواد آخرش بد یعنی هم لیسانس داره هم فوق لیسانس داره هم سی سال کار کرده هم بلد نی خب آقا این جلو نمیره اینجوری کشور کرد. با او من این کارو میتونم انجام بدم. این کار رو میتونم انجام بدم. توجه بفرمایید قرض مالا این است. یکیش تلاشه یکیش کوششه لیسا للانسانه امیرالمومنین تل... من آقا مردی رو در تاریخ بشریت ندیدم به اندازه علی تلاش کرده بود خدا خدا اصلا شب و روز میدوئید چون بریم بهش میگفتن این مونسش کلنگ و بیله یعنی هر وقت میبینیم یا بیل رو دوششه یا کلنگ رو دستشه یعنی یه رو داره آباد میکنه دلم میخواد بریم مکه من اونجا میزدام گریم میگرم این مسجد شجره که من رفتم محرمشم دیدم تابلو زده عبار علی خیلی برای من عجیب و سرنی ها زده نا این مال, مال وحابی هاست اینه اونها که اصلا با علی میونن. تابلو زده که اینجا قنات های مرتزا علیه یه خود آدم دیدم چقدر قنات گفتن اینا رو همه رو علی ساخته وقف کرده هنو هست هنوز قنات های امیر المومنین هست فقرها میان آب برم دارن تولید سروت هم نمیکرد که پولتارش ها همون نون جو بود که میخورد و همون کرباس بود که می. همه رو وقف میکرد او این آدم چقدر کار کرده چقدر تلاش کرده چقدر دویده <تصفح> تمام دستش پینه بسته بود بس که تلاش می کرد، کار میکرد مزرعه درست میکرد نمیدونم قنات درست میکرد همه رو به نفع پا برهنا این امیران ای مومنینه من ندیدم آقا مردی در تاریخ به اندازه علی تلاش کرده باشه کار کرده باشه به اندازه اونم عبادت کرده باشه حالا روزاش اونجوری بود شبم هم میامد تا صبح من نمیده این چه موجودی بوده مجبه. ما الان باز نشستیم. شب میخواییم درکت پنی در رکت دو رکت نماز بخونیم فیسک میگیریم کمرمون درد میگیریم بیکارم هستیم اون مردی که این همه تلاش میکرد الان جوان ها باور نمیکنن. بعضی شب ها هزار رکعت نماز میخوند اصلا آقا یه چیز منحصر به فرد دیگه از این رکعت نماز میکنند آقا این مرد مگه بیکار بوده که هزار رکعت نماز میکن نه. اون همه هم روز تلاش میکن یکیش این از لی سلل انسان الا ما این یکی از عواملیه که روزی رو زیاد میکنه جبون میاد میگه آقا من چیکار کنم روزیم زیاد شه؟ میگم تلاش کن دیگه خب تو یازده وازه از خواب بلند میشی تازه یازده بلند میشه دنگش میگیره قرآن بخونه خب بعضشان هم مذهبی هم متاسفانه <تصف> چون حالا میخواد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 دید تو مسجد کوفه همه وقت وارد که شد دید یه دی اصلا همیشه اینجا هند دید؟ الان ما داریم از اینها الان اونا مسجدی بودن بعضی هیتی هند مثلا صبح هیته من مثلا بعضی صبحا تا هیات میرم این هر ستاشو میان بعد که من میام بیرون میگه که از اینجا کجا میری؟ <تصفح> میگم که دیگه میرم خونه میگه پس برم دنبال سید مجید اون فلان جاست میگه ما میگه دنبالو دوباره زور برید دوباره این اومده زور دوباره عصر بریم دوباره عصر اومده اینجا دوباره شب بریم اینو اون منبر الان اینا منبر آخر من دیگه میگه الان اجازه کجا همین دم در که من میرم چرا میوم اجازه اینجا کجا میری میگم قبرستون اونا مسجدی بودن اینا هیتی هم. <تصفيق> همه عمرش توی هیتی خوب. خوبه هیت شیرینه ولی خب اوها تلاش باید در کنشش باید کرد بعد دویید خوبه اینکه بعد می نی... اینا هم همینجور مسجد جاذبه داره شما بیایی مسجد مثلا بعضی مفاتی براشون جاذبه داره خب هرچی میخونه سیر نمیشه خب شیرینه دیگه بازی هیئت برایشون جاذب، بازی زیارت آشورا برایشون جاذب داره، بازی سینزنی برایشون جاذب داره. آیا نه؟ نه اش نگیم. آیا اون خدا نکنه مزداش زبون کسی بیاد؟ دیگه نتونه ول کنه. الان یا آقایی بودن جمعیت. میگم می من شابا شیفتم دو ساعت مراخصی میگنم میام اینجا. این نه ببینید شیفتش ول میکنه. مرخصی میگنم. میگم یا من دو ساعت میخوام برم بیت لحسن سینامو بزنم. کریم رو بکنم دور بر میگردم. این چیزی پر جاذبه یه. اونا هم الان دید همیشه تو مسجدن حضرت فرمودن که اینا کی ان من هر وقت میام اینجا تو مسجدن گفتن اینا زوحد کوفند گفتن اینا عابدای کوفند اینا گفت یعنی چی گفت شب تا صبح مشغول عبادتن روزام روزن می میخونن گفت خرجشون رو کی میده گفتن ما میدیم به کی بدیم بخوره بهتر از اینا هر چی میخورن نور میشه هر چی می عبادت میشه من یه دعا ما رو بکنم بس حضرت فرمان به خدا قسم شما از اینا بهترین اقلا یه فایده‌ای داره اینا که فایده ای نداره شما اقلا دو نفر روزی میدین می که چیزی نمیده که رفت بالا منبر اینا مظلومیت امیرالمومنین نمیگو من اینجوری میگم گوام من بگم میشه میگم واس پیغمبر شد اینا. این اگه میگو من اینجوری میگم میگو آقا تو بگی میگو از پیغمبر شنیدم هرکی چل بر مردم باشه ملعونه از رحمت خدا بدوره گو مادام که من تو کوفه نمیذارم مسجد مسلمین جایی همچین آدمایی هایی باشه اومد از منبر پایین با این تازیانه میزد همه اینا رو بیرون میکن میگو برین آقا کار کنین یعنی چی خردی شما دیگران میدن چرا بارتون رو دو دوش مردمه برو کار کن. به این توجه، یکی تلاشه، یکی کوشششه. اونی که میخواد روزیش زیاد شه، باید تلاشش رو زیاد کنه، کوششش ز... بعد تنبلی رو بذاره کنار. این تو شعن من نمیذاره کنار. من خودم حالا دیگه ببینیم از خود ستایی نکنیم، ولش کن از از ذهنم داره. ولی این یکی آدم باید تلاش کنه اما چند مطلب بعد از این میگم عوامل معنوی که روزی آدمو زیاد میکنه یکی احسان به پدر مادره. به ادم به پدر مادر نه اینکه شما بعد ازالو میگی میگه آقا من دستشو میبوزم. آقا می اون یه عامل دیگه تنبلی میکنی کار نمیکنی اونو بعد درست کنی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 نمازش رو اول وقت بخوند به نحب نیکو بخوند روز... یکی از چیزهایی که روزی آدم اینکه آدم همیشه با بوزو باشه همیشه با تهارت باشه این روزی رو زیاد میگون بعد هم روزی هم یه چیزی برای جوونا بگم فقط پول و اینا نیست حالا ما داریم میگیم فقط پول نی. بعضی میان میگن آقا ما هرچی آدمه مثلا کافر و ملهد و مشروب خور میبینیم روزیش زیاده. هر چی آدم مومن می‌بینیم میبینیم فقیره میگه من از این حرفایی که شما میبینیم ریشه ای نداره. اولا آقا اونی که شما میگی کافره شاید تلاش زیاد میکنه شاید اون شش صبح میره دوازده شب میدوه شما که نمیکنی که اولا ثانیان روزی که فقط مادیات نیست که خدا به حضرت امیر یه زنی مثل فاطمه زهرا روزی کرده هم چیزی این روزیه دیگه آدم یه زنی مثل هست زهره داشته باشه یه بچه های مثل امام حسن و امام حسن یه پدرزنی مثل رسول خدا بشت داده این روزیه دیگه همینجور بشمور دیگه ببین چقدر از اینا روزی. همین که شما اینجا بیای یه ناله برای امام حسین بزنی روزیت بوده دیگه نیمه شب دیگه شما نیمه شب بلند بلند برای حسین ابن علی گریه کنی این روزی نی. همین روزه تونستی تا امرو بگیری روزیت بوده بعضی روزیشون نبود مریض بودن نتونستن بگیرن شما روزیت روزی وسیع از مادیاته خیلی به مادیات اکتفا نکنی اینشالله کرولا بری روزید خدا قسمت کنه دو الان شما رو به طلبن عیده فت بریم کربلا این روزی نیم مشهد بری روزیته. اونجایی که الان بعضی جوانات دلشون شکست عشقاشون ریخ روز صورتشون روزیشون دیگه این, این خیلیش وفیه اینکه شما همیشه با تهارت باشی روزیت زیاد میشه اینکه انسان سهرخیز باشه و بعد از نماز صبح نخوابه. دیگه که روزی رو کم میکنه دارم بعد نماز صبح بخوابه خیلی این روزی رو کاهش میده حالا شما مادی و معنری بده. میراندم بین و طلوعین بیدار باشه و دیگه نخوابه همین که آدم میخوابه کسل میشه خودش میفهمه که اصلا, اصلا دیگه میاد بیرون میگه زور شد دیگه میگه دیگه اصلا همه وقت واقعا بیبرکت میشه روز روز بیبرکت میشه روزی انسان به کاهش بیدا میده اینکه آدم بعد نماز نخوابه بره دنبال روزیش این که انسان همیشه این که خدمت به مردم کنی مردم دعات کنن شما کارمند مثلا بعضی کارمندان همین شما یه خدمتی به مردم کن اینا دعا بگن همین یه کلمه بگن آقا هر چی میخوای خدا بده روزی زیاد میشه بزاد یه جوری زندگی کنین جوانا دعا پشت زیاد باشه خدا این خیلی زرنگیه همه بگن که هرچی میخوای جوان خدا بده این،, این, که، این برکت ایجاد میکنن چطور ممکنه این همه دعا بشتر کسی باشه به برکت ایجاد نکنه اما خدایی نکرده آقا یه جوری زندگی نمی نفرین بشترتون باشه بگن اشالا زمین بخوره شا... نم... این, این همه نفرین بشترشه من یه ای رفتم با یه آقای کار داشتم کارم گیر بود دیدم هر کی میاد به این بدو و میگه به این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 همین زیردستای خودتم هم از به تو بدو ایران میگن تو بد زندگی می‌کنی آدمی بعد آقا یه جوری زندگی کنه دعا پشت سرش زیاد باشه همه میگن آخ خدا خیرش بده خدا عاقبتشو به خیر خدا هر چی میخواد بهش بده آقا مگه میشه این همه دعا پشت سر کسی باشد و این برکت ایجاد نکنه این توجه بفرمایید یکی دیگه از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه توبه است استقفاره که گناه روزی آدم رو کم کرده همه که میگه خدای غلط کردم میگه حال پیدا کرده بگو خدای اگه مانه روزی من گناهامه بگذر به بدیمون ما رو معاخذه نکن بله یه وقت گناه مانه شده راوی اومد گفت بیدارم میشم سهر برا نماز شب اما انگار دوتونم اصلا نمیتونم از جاکند دشم دوباره خوابم میبره حضرت همون گناه های روز شما رو سنگین میکنه ولی گناه ها روزی آدم رو کم میکند یه وقت امام حسین اسم شما رو مینویسد بری کربلا وقتتون رو نمیگیرم یه وقت یه کار قلم میگیره می یه دفعه اسمت میره بیرون من ما دیدیم آقایون من آدم دیدم که آقا اومد پولش رو داد پاسش رو داد همه رو همه رو همه رو همین سه روز مونده اون حرکت کنه اومد گفت یه کاری برام پیش اومد دیگه نمیتونم بیام گفتیم آقا جریمه میکنن سازمان حجه الان ویزات رو گرفتن گفت نصف پولم هم کم کنن من نمیتونم بیام رفتیم گفتیم من یادم نمیگفتن چقدرش رو کم میکن کم کردن یعنی هم شما در نظر بگی هفت سد اشت من پولش رو هم چربارو نتونست بیاد. یه باید نخواه یه کاری میکنه اسمت قلم میگنم. یه باید یکی نبود امام حسین اون رو جاش مینویسه. یه باید یه کاری کرده امام میگه این بیاد جاش. روزی آدم کم. به خاطر این اگه یه ای وقت پا داد استغفار توبه. بید. بگیم خدای اگه این گرهی ای که تو زندگی ما خلو مال خیلی جاها و گناه خیلی جاها مال گناه, هاست. جاها مال گناه هاست. همون که استغفار میکنی توبه میکنی در باز میشه. استغفرو ربکم انهو کان قفارا. خدا میگه خدا شما چرا استغفار من که میام مرظم که <تصفيق> من که میام تو چرا استغفار نمیکنی خب بکنیم چی میشه یورسل سماع علیکم متراب میگه من آسمون بارون به شما نازل و و یمددکم به اموال و بنین مالتون رو زیاد میکنم پسراتون رو زیاد میکنم اولادتون رو زیاد میکنم و یجعللکم جنانهارن جنات و انهار باقاتون رو رونق میدم نهراتون رو پر آب میکنم خشکسالی رو برطرف میکنم چمبود آب و خدا میخواد بگهد که همه اینا از گناه پا داد استغفار توبه من تا اونجایی که تونستم نوشتم یکی دیگه صدقه صدقه این که آدم آقا صدقه به روزیش زیاد میشه یکی اخلاق خوش آدم بد اخلاق آقا روزیش کم میشه آدم خوش اخلاق روزیش زیاد میشه شما اگه آقا یه جوری از خونه بیای بیرون مادرت ازت راضی باشه بابا هیچ ازاد... هیچی هم نگاه همین وقتی شما میای بیرون تو دلش میگه که پسرم برو خدا به همراه روزیت زیاد میشه اما دل مادرتو بشکنی بری همه در رود بسته میشه زن و بچه هم هم نه چون یه وقت از خونه میری بیرون خانومت پشترت میگه که هرچی میخواد خدا بهش بده شالا. از دلش لازیه از شما دیگه روزی زیاد میشه یه وقت اونو میچه زونی و میری درها رود بسته میشه روزی معنوی هم کم میشه نمیشه آقا ما حقوق دیگران رو زیر پا بذاریم و خدا درهاش رو ما باز کند این نمیشه این توجه حالا یه وقت مادر با مادر زندگی میکنه، یه وقت با زن زندگی میکنی، یه وقت با شوهرت زندگی میکنه. اینا اواملیه اینا که آقا روزی انسان رو زیاد میکنند. اونقدر که تونستم گفتم. دیگه ما تبعیت کنیم، نم، نم، من نمیخواستم اما دیگه امشب من هم دلاتونو ببرم در خانه سه ساله عبی عبدالله. <laughs> خدا بعضی جوانان نگفته گریه کردم من دلم شکست <تصفيق> من چی نگفتم زدم زیر گریه آفرین به این محبت ولی یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه محبت احل بیته خوفز اگر قدم زنیم در راه خاندان به صدق بدرقه رهت شود همت شهنه نجر یه شب تو این ماه اینجا گفتم بعضی میگن هر کاری کرد امام حسین با این دختر سه ساله خداحافظی کنه نتونه عجیب راه رو به عبی عبدالله گرفته بودیم اون شبیه هم که اینجا این روزه رو خوندم گفتم بعضی پدرها با محبتن نمیدم دیدین من اینجا گفتم این به بچه زیاد محبت میکنه. گوی میخواد بره این دختر مثلا روز جمعه از خونه. از میخواد بره مسجد نماز بخونه بیاد. میاد دم در وای میسته. درو میگه که نماز تو خونه بخون. میگه همه هفته که سر کاری دیگه حالا یه جمعه اینجا خونه. میگه من زود میام، یه ربه میام، 10 دقیقه ای میام. میگه نه. وقت وقتو دیدین مادر برای که یه لطفی به این پدره بکنه این بچه رو میبره تو آشپزخونه مثلا یه لواشکی، پفکی، عروسکی یه چیزی اینو مشغولش میکنه بابا میبینه که این مشغولش کتشو میبوشه فرار میکنه میره این درو میگه میره حالا اگر این پدر یه ماموریت یه ساله بخواد بره کار سختره اگه بخواد یه سال نباشه شش ماه نباشه اگه بخواد برا همیشه بره <تصفيق> اینا دیدم اینا بچه ها میدن می قاسم رفت نی اومد من روم نمیشه میگم نه. نه اومد جنازش اومد <تصفيق> خدا روم نشد اکبر رفت رو دست آوردنش افباس رفت دیگه بر نگشت گفتم بابام بره دیگه بعضی میگن ه... اصلا کلافه شد امام آخر میگن همون کاری رو کرد که پیغمبر با فاطمه زهرا کرد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 خرابه کجاست شام کجاست کی میرسیم شام کی میرسیم خرابه من سندن دارم 20 منزله دیگه بیست شب طول کشید تا خرابه بیان تو این بیست شب یه جا نبوده این دختر بیتابی کنه یه جا بزن این بری... اینجا باباش بهش قول داده بود وقتی گفتن اینجا شامه حالا یه دختری که خیلی منظرت میخوام. تازیان خورده است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 این بیشتر از این نتونست بگه، دق کرد. تا صبح میگفتم اون نمیشد. تا صبح در دل میکرد حرفش، اما نتونست بگه. وقتی این سر رو آوردن رو, رو این دختر گذاشتن. همین روپوشو رو زد کنار، تا چشمش به این سر متحرفتاد، دید وعض باباش از خودش هم بدتره.